خب من در اینجا پیامک های شما رو میخونم که میام بین حرف آقای دکتر و در میون داستان های شاهنامه ببخشید آقای دکتر آقای استاد جنیدی من باید بگم تو خیلی پیامک اومده پیامک زیاده, مثل زیاده من سوالات متنوعی زیاد کردم سعی کردم یه تقسیم بندی انجام بدم روی این سوالات از سوالات تشکر کردن و لطف داشتن از شما گفتند بسیار زیاد که انتخاب, ما، انتخاب شما از طرف ما در برنامه پنجره های رومت که از بهترین انتخاب ها بوده استاد لطف کردند منت نهادن بر ما و پرمک های دیگه اومده که سوال کردند که در مورد واقعیت حادثه سی صحبت به فرمایند آقای دکتر سپاسگزارم. حدر سیصد یک دیگر از دروغ های جهان غبه علیه ایران چون ما نسبت به ایران عقده هارت دارند و از زمان باستان نتونستن این فرهنگ با شکر تحمل بکنند و خودشون همیشه با وحشیگری و دروغ زندگی کردن از زمانی که تاریخ مییسن یونانه شروع کردند به دروغ گفتن درباره ایران تا کنون ادامه داره یکی از این دروغ هم فی آها سیصد نفر بودند من پیشنهاد می‌کنم که این شنونده گرامی کتاب یونانیان و بربرهای روانشاد امیر مهدی بدی رو بخونن تا ببینن که یونانیان چقدر دروغ گفتن اخیران هم یکی از پژوهشگران جوان بنیاد نجابور آقای فرشید ابراهیمی کتابی در هرودوت نمیشه هرودوت ای برای تاریخ این هم کتاب هم کوتاه و هم دربر است این بخونن تا ببینن اروپایا چه اقدهی دارن که انقدر باره ما دروغ میگن؟ این دیگه من چی بگم؟ من یه چیکایش رو دیدم ستش. مثلا خشهاش ها رو من نمیخوام از خشهاش دفاع کرده شد خشهاش ها معلومه در سنگ کنده های حقامانشی مهمه که پوشیده سرتاپا پوشیده است اون رو به صورت یه برهنه نیم بره تقریبا برهنه در بردن من ننگ دارم که این فیلم ببینم. و ندیدم هیچ سینمایی هم نمیرم بلکه تو خونه تلویزیون هم من ندارم رادیو هم ندارم اومد یه رادیو برای شما باید بگیریم ب... نه من گوش نمیرم که من خ... کاری هستم که نباید به رادیو گوش کنم ولی خب شنیدم دیگه شنیدم که یک یک هنرپیشه بسیار پست رزلی رو با آرایش. زنانه به گونه قشوارشوتار گفت خب این دروغا رو نهان و غرب خیلی برای تسلی خودش میگه چون در برابر عظمت فرهنگ ایران کاری نمیتونن بکنم باید این دروغ ها بکن. بعد این دروغا رو بگن بعد گفتن که سلام بر شما و استاد جنیدی این بار این بار چندم است که پیام میدم استاد خواهش میکنم چند جمله به زبان پهلوی و اوستایی صحبت کن من میخواستم اگر به یاد اون اشعارون اشعارو برای ما اشتار اون اشعار او رو که من بیاد ندارم ولی خب من چند جمله به زبان پهلاوی براتون آنون صحبت میکنم شات بابید پیروش بابید وحروش کار آزاد زیوید متاجی بله, بله آزاد زندگی کنید اوتان کشور آپاتان اوتان دیل شاتان یعنی کشور شما آبادان و دل شما شادان باد رزندی ایران ایران را توخشین اپایت ایرانی آباد را دانشین اپویت یعنی ایران را کوشش لازم است ایران آباد را دانش لازم است ایرانی آزاد را وینیشین اپایت ایران آزاد را بینش باید شاد بوید توخشت تاک آباتی ماتری ایران شاد باشید بخوشید تا آبادی مادر ایران زمین چه خیلی ریواز من نشد بودم اینقدر حالی تو بخش تو بعضی ها من چنده بودم این زبان رو اما الان کامل شدم شاد تو بخش و برنام بخش هایی برنام برنامی آنندم یک صحبتی در مورد این داشته باشید بلد. و چه به با درود خدمت استاد عزیز آقای دکتر جنیدی لطفا معنی کلمه آتوسا را بفرمایید آتوسا خانم از کرماشان. درود و کرماشان و درود بر آتوسا این واژه در اوستا بوده هوتوس یعنی توس نیک هو یعنی خوب تاوست زبان اوستایی بعد در پهلویش توس هوتوس شد در پهلوی اون وقت اروپا یونانیون اون رو به زبان خودشون برگردوندن کردن آتوسا یعنی هو توس توس نیک. که در حقیقت نماد یه شهر زیبایی هست در خراسان از خراسان به خوربران یعنی مغرب ایران که در حقیقت کرماشان و کردستان و آزربایجان و درستان هست درود باد آها. با درود به استاد بزرگ دکتر استاد جونیدی و آقای هدایتی اصلا جاندی خواهشمندم هیچ وقت به آقای هدایتی بیش ندید چون هرگز نمیگه درود گرچه بسیار دوستش دارم درود بر شما خب پندی بودی کن به شما دادی کن بله خیلی برده چیزی بیزن ندیم ایشون درن آقای خوشگی میکنه خب <تصاف> امشب شب چند ماه تا من نمیدونت کنم. <تصاف> امشب فکر میکنم نمیدونم ن همه ن ماه, ماه کاملون این ماهت رخشانی ای که از اون فراز به فرود مینی و به کوه ها و ها در راه های ایران رو روشن میکنه ما ای که به ماه بر نگاه میکنن روشن نگه می داره این هست که ما هم بهش برین کردیم این پر مانگ هست در گفته پیشین گفتم که اون هفت روز نخستین رو ایرانیان رو انطر مانگ یعنی اندر یعنی اینتر انگلیسی یعنی آنتر فرانسه اینا هم از اینستاگرید شده اونا نمیخوان قبول کنن دروغ میگن دیگه حالا این کوشش از دانشگاه های ما هم که آغاز نمیشه برای که پیرو اونا هستن اما در بنیاد مشهور آغاز شده و به زودی همه اینها روشن خواهد شد بعد پرمانکر پر یعنی پر ما از شب هفتم شروع کنه به پر شدن تا شب 23 که آخرین که دیگنی میشه این بعد آخرشم پیش هفتم من اونو یک بار گفتم بعد دیدم که بعضی بچه ها گفتن که دوباره بگم ویشفتست تو هیچ کس منی نکرده ویشفتت یعنی دور از شب ماه دور از شب ماهی که روزها دیده میشه, میشه. تا روزی 28 هم که دو روز قایب میشه بعد بعد, بعد بعد از دو روز به صورت کمان دلاویز زیبایی که کمان عبروان دلبران ایرانی به اون میمونه در قسمت خوربران یعنی مغرب همراه با آغاز بیرانی شام دیده میشه ما امشب در شب درخش ما هستیم پانزده هم. نه کمتر چهاردهم. هم آن نه چارده هم من درست کنم شما, شما اینطور میپرسید منم به اشتماع میابودم خب باشه یه نوره اینجا یه نوره اونجا ایش ده خب قبول برد بگونیم دانو کمترش خب میفرمودید. ادامه نبرد ایران و توران شبید آاقدل پرز تیمار توس به خوابنده اندر اومد گه زخم کوس یعنی شب تا صبح بیدار بود دیگه سفید دن که کوس رو میزنن زخم مینی ضربی که به میزنن اون موقع تازه چشمش به خواب رفت. چوننام دیگه روخم زبانش به خواب که به شم ایل برآمد از آب برای شم رخشان یکی تخت آج. سیاه بران تخت با فر و تاج، لبان زخنده زبان چرب گوی، سوی توس کردی تو خورشید روی که ایرانیان را همه در بدار که پیروز باشید تو در کارزار زار. تو زگو در زیان هیچ غمگین مشو که ای در یکی گستانه است نو. ز خواب اندر آمد شده شاد دل، ز درد و قمان گشت آزاد دل، به گودرز گفت، جان پهلوان، یکی خواب دیدم به روشن روان، نگه کن که رستم چو باد دمان، بیاید بیاری زمان تا زمان، بفرمود تا بردمیدم، ناوی، به جنبید برکو، لشکر زجای. بیاورد زان روی پیران سپاه، شد از گرد خورشید تابان سیاه، دو لشکر به در آورده روی، زگوردان نشد هیچکس کس جنگ جوی که این بود که یکی از پهلوانان این سپاه میره به وسط هموار بخواد از اون طرف هم یک نفر بیاد. نه از این سو, نه از اون سو کسی جنگ نشود نشد چون این گفت هومان به پیران که جنگ همی جست باید چه جویی درنگ نه لشکر به دست شکارندرند شکارند که اسبان ما زیر بارندرند به دو گفت پیران که تیزی مکن نه روز شتاب بست و گاه سخون. بباشیم تا دشمن از آب و نان شود تنگ و زنهار خواهد به جان. سوی پرده رفتند زان ره از بیامد به پیش سپاه. گشادند گردان سراسر کمر بخان و بخوردند، نهادند سریانی تورانیان، ایرانیان که بالای سنگ و کوه هستند. به پیرون فرستاده آمد شاه که آمد زه هر جای بیمر سپاه. سپاهی که دریای چین راز گرد کند چون بیابان به روزه نبرد. نخستین سپهدار خاقان چین که تختش همی بر نتا زمین یعنی زمین یارای تحمل سنگینی تخت او رو ندارد. زمرد سپیچاب تا دشت روم سپاهی که بر دارد آبادبوم بوم. آباد بوم کشور ایران بوده چون اینجا دشت خشک و بیابان های بی زیاد هست و ایرانیان با پدید آوردن کاریز و قنات این کشور رو تبدیل کردن به مرز آباد امین این در اروپا باران زیاده اگر خودش به خودی خود آباده یعنی کاری نکردن برای آباد شدن اونجا اما ما در اینجا قنات بروردیم و کار قنات خیلی خیلی عجیب و شگفته مگه وقت باشه یکی از برنامه ها در باره کاریز و قنات و کوره‌های ایران هم در باره آبیاری کردن بگم حتماً واقعاً ما تو مبهوت میشه ما در گنوباد یه قنات داریم که 350 متر جرفای مادرچاهش چاهش است 350 متر چاه که میزنند 350 200 متر با اینا از کجا میدوننسکن که برن پایین به 350 متر آب به آب میرسن ما فرموله هایی داشتیم برای اینکه بدونیم که زیر زمین آب هست. و دانش دانشمندان ما ایجاب میکرده که اینها رو درک بکنن که کجا آب هست و اونجا برن. و خیلی همت و کوشش و درنگ و صبر و استقامت میخواد که مادر ها رو سی ست متر میتونن در گنابات هست دارم. و بعد اون وقت ببینید چند فرسخ. من یه قناتی رو در... یزد دیدم که در زارچ مادر قنات مادرچاهش بود و در خورمشاه یزد می رسید به نیمه و در رسته های اون سوی یزد شیش فرسنگ اون سو بیرون می و آبش می رسید به کشدار ها این همداد یعنی این سیستم و این گروه و این آینده نگری چی بود که اینا رو بادار می کرد که این قنات بکنن در هر صورت آبادبوم یعنی ایران برای ما از ک زمین آب دارو بردیم و دهشت آباد کردیم متاسفانه با حجوم مطور های چه امیق و نیمه همه این دهشت های آباد ما داره ویران میشه قنات داره خوش میشه قنات خو... اکثرش خوش میشه ما تو برنامه اتفاقا تو این برنامه پنجره های به محتب امشب شد یادیم بکنیم از, از استاد کردوانی باشون صحبت میکردیم در مورد کنادخای ایران و مفصل هم صحبت کردیم. اما چقدر خوب میشه شما دوباره این رو تکرار شاید یادآوری باشه. و نه چه عمیق نزنن بیچاره کرده واقعا این دولت نبوده یزی تبدیل. این خیلی صادق است. در قطر هرکس یک خانه داشته باشه. دوست متر باشه زمین یک رو نیمه عمیق بزنه. برای چی که آب زیر زمین قطر رو از بین ببرن که اونو متوج کار بشه. این کار در ایران شده بی ها و سال هاست این کار شده یعنی حدود شاید سال که چه عمیق شروع کرد اولین چه عمیق رو جدن تو میدون ها و آب همتون میومد سرشار مردم خوشحال بودن میرفتن از این آب مخورن. فشاری بودن نه نه هنوز فشاری نه نه نه من بیاد دارم هم میدون مخور دوله چه عمیق داده بودن آب فوران میکرد بیرون. و خوشحال بودن و سیسایش خداوند بکردن از اینکه آب اینم زیر هست غافل از اینکه این, این چه های عمیق برای خوش کندن تمام کشتار های زیبایی ایران به ایران وارد شده و بعد از اون چه ها نیمه عمیق یه هر کشاور زیر میتونه یه چه ها نیمه عمیق بذاری یه مطورم بذاره بلاشه. در یک روستایی که در نزدیکی نشابور بود ماروس چشمهی بود که هزاران سال این چشمه اومده بود و پیرامون این چشمه یک چمنزار خیلی خیلی بزرگی بود که در لغت محلی بهش میگن اولنگ و از بالای کوه وقتی دیده میشد همه کسانی که در اون کوخ جلگه ماروز زندگی میکردن یا همسایگان میگفتن اولنگ ماروز که مثل خاله چهره این جلگ هست بعد در اون روستا ها اشخاص اومدن تو خونه هاشون یک نفرم که کنار اون چشمه بود چشمه خوش شد وسط چشمه یک چهار نیمه زده رده به امان اینکه اینجا بالاخره میرسه به با آب قافل از اینکه اون چهار اون در لایه های آب ممکنه در نزدیک سطح زمین بوده از راه های جور اومده همه اینو خوش شد من نمیدونم باید چه کار کرد اون بزارد کشابرزی وظیفهش چیه چی؟ باید با هم رسیدی جهاد ساز خیلی هم البته دوستم ندارن این اتفاق بیفته من می دونم با تو توی این زمینه چون خودم علاقمند هستم به قنات و م... دوست ندارن بوجودم... که خب بی باید چرا بگیرم بگیم متاسفانه قدیم 50 سال پیش همجور اومده جلو که دیگه شده یادت خیلی بد می فرموندید بله چوبش من پریشان شدم با یادآوری اینسیدن قناات ها نه می ولی الان به یاد ندارم که کجا بودم؟ در هر طال چ بشنید پیران چرا پیدا شده مجسهپیچ آ تاپ دشت روم سپاهی که بردارد آباد بومیانی مینی کشوری ایران رو از زمین بر میداره چ بشنید پیران به توران چون این گفت که سرفرازان آزان شاه به دین مجده شاه پیر و جوان همه شاد باشید و روشن روان سر از, رنج از سر از رزم و از رنجو که این خواستن از لشکرها را راستن. مقصود این که سپای ایرانو رو کنماندن میدیم که دیگه بعدن نیاز به جنگ نباشه. به ایران و توران و برخشک و آب نبینند جز کام و افراسیاب. لشکر بر پهلوان پیش به موجد بیامد آمد همینو به نو. به گفتند که نام بر پهلوان همیشه بزی شاد و روشن روان. به دیدار شاهان دلت شاد باد، روانت، از اندیش آزاد باد، یعنی شاهانی که همراه با خودشون برای یاری سپاه توان میان. به هومان چنین گفت، پیران که من پذیره شوم پیش آن انجامن، که ایشان راه دراز آمدن، پرندیشه و رزم ساز آمدن، بیا آمد به نزدیک چین پیاده ببوسید روی زمین. بپرسید بسیار و بینباقتش بپرسید یعنی اول پرسی کرد. حالا حالا. هنوز در تاجیکستان هر چند بار گفتم بازم میگم از اونجا که این زبان تاجیکی خیلی شیرینه میگم مثلا میگن که آمدم یک پرسم شما رو یعنی اومدم که اعوال شما رو بپرسم پرسیدن یعنی اوال پرسی کردن بپرسید بسیار و بنواختش بره خیش نزدیک بنشاختش یعنی بنشاند بهدو گفت خبپرسید زان پس ز ایران سپا. که دارد نگین و درفش و کلاه چنین داد پاسخ به دو پهلوان که بیدار دل باش و روشنروان درود جهان آفرین بر تو باد که کردی به پرسش دل بند شاد به وقت تو شادانم و تندرست روانم همین خاک پای تو جست. از ایرانیان پس بپرسید شاه نه گنج و سپاه هست و نه تاج و گاه بی اندازه پیکار جستند تو جنگ ندارند در چنگ جز خار سنگ یعنی روی کوهی رفتن که همش سنگ خار که خورشید تابان ز به گشت بالا همی سوی خاور گذشت خاور در زبان پهلوی خوروران یعنی مغرب و در شاهنامه هر جا که سخن فردوسی است خاور به معنی مغربه اما در ها از خاور به جای خراسان نام بردند. به زوری خروش آمد از دیدگاه که شد کار گردان ایران تبا دیدگاه ایرانیان گرد سپاه سپایانی که بیاری توران میان دیدند و که تباخ شد کار ما سوی باختر گشت دیتیزه ببیند باختر هم باختر یعنی شمال یعنی از سپاه از شمال داره بیاریشون میاد چون خود توران در شمال این ایران شمال شرقی ایران قرار داشته سوی باختر گشت گرد سراسر به سان شب لاجورد به شد از خاک خورشید تابان بنفش، نفش زبست پیل و بر پشت پیلان درفش افش قوه دیده بشنید گودرز و گفت که جز خاک تیره نداریم جفت, جفت روخش گشت زندوه برسان غیر چنان شد کجا خسته گردد به تیر خسته, خسته یعنی مجروح چنان گفت که از اختر روزگار مرا بهره کین آمد و کارزار، زگیتی مرا شوربختیست بر پراخنده بر جای تریاک زر. از این زندگانی شدم ناامید سیه شد مرا بخت و روز سفید، نزادی مرا کاش کی مادرم نگشتی سفهر بلند ازبرم از برم. روی هومان به کردار گرد همی راند لشکر به دشته نبرد. سواری به مجده بی آمد زی پیش بگفتان کجا رفته بود کم و بیش یعنی داستان بین پیران و خاقان چین رو گفت چوبش نید هومان بخندید و گفت که شد بیگومان وقت بیدار جفت یعنی بخت بیدار جفت ما شد خروشی به شادیز توران سپاه با عبرندار آمد از آن راز برا قدرگان ایران پر از داغ و درد، رخان زرد و لبخاخ شده، لاج ورد و اندرز کردم همه همگروه، اندرز وسیت، در بوده هن درزه، هن یعنی هم، درز یعنی دختن، درز واژه فارسی از اینجا گرفته شده. اگر میخواید بدونید درسینگ یون انگلیسی هم از اینجا است و اونا اروپاییا ها لباس نداشتن. ترکونید لونگی یه چیز دو رو خودشون میپیچیدن، درس در کارشون نبود این افتخار ماست که جامع رو به جهانی دوخ رکیم دوخت و دوز و درس پدیدار شد و گردن در جهان و باستان همه برهنه بودن یا نیم برهنه. شما این که از یا که از یونان و روم و باستان هست یه پارچه دور کمر خودشون پیچیدن. و هم در یعنی به هم پیوند دادن. یعنی کسی که میخواد بمیره یا انتظار داره که بمیره گذشتهی خودشو با آهنده فرزندانش می پیونده. که من این کار کردم این کار کردم شما این رو بکنید بنابراین اندرز به زبان فارسی یعنی آه. آه. آه. یعنی وسیعت. و چون همواره پدر وقتی که اندرز میکرده دخشی پند هم به اندرز می افزود شد پند و اندرس و ما امروز اندرز رو به منی پند می نه اینجور نیست اندرز یعنی وسیعت که همین جا هست آه. بزرگان ایران پر از داغ و درد روخوان زرد و لبها شده لاژور و اندرس کردن همه هم گروه. پراکنده گشتند بر گرد کوه و هر جا کرده یکی انجامن همین مویه کردند برخیشتن که زارین این دلیران خسران و جاد کزیشان به ایران نگیرند یاد زار این دلیرانی که ایر... ای پایتخت ایران یادشونو نمیکنه نمیدونن که کجا هستند شد بیشنه گیفت تا تیغ کوه برامد بیام بوه دور از گروه از آن کوه سر کرد هر سو نگاه درفش سواران و پیل و سپا بی آمد به سوی سپه دوان دل از غم پر از درد و خسته روان به گفت چندان سپاه از و پیل که روی زمین گشت و سام چه چجد روی گیتی چو دریای قیر نه پیدا نه بهرام و تیر بی دمان پیش توس دوان و شده روی چون سون چون چونین گفت که ای پهلوان و سپاه از ایران سپاه آمد از نزد شاه سفهبت بخندید با مهتران که ای نامداران و گنداوران آرامد اکنون نسازیم جنگ گهی با شتابیم و گه با به نیروی جزدان گو پیلتن به یاری بیاید بدین انجمن از آن دیدبان گشت روشنزوان، همه پاره دادند، پیر و جوان پاره یعنی پول چون پول های زمان باستان مهر نداشته و در زمان خامنشیان این در زمان داریوش مور زدن پیشتر از اون همون پاره یعنی قطعه های سیم یا زر رو رد و بدن میکردن بنابراین موند پاره پاره به معنی رشوه هم در اومده اگر پاره دادن به کسی و پاره در کردستان هنوز کاربرد داره به معنی پول از آن دیدهگان گشت روشن روان همه پاره دادن پیررو جوان به او موجگانی دادن چه خورشید بر چرخل لشکر کشید شب تار شد از جهان معاپدید یکی انجمن کرد خااقون چین به دیبای ها راست روی زمین به پیران چنین گفت که امروز جنگ نازیم روزی به باید درنگ. چون گفت پیران که خاقان چین خردمند است با آفرین، بران راند امروز کو را حواست که او بر سفه سر به سر پادشاست. به شاهان لشکر رجای هوا پر شد از ناله کرنای که از دور توس سفه بد بدید، سپاه هانچه بودش رده برکشید، یعنی صف کشیدند. از آوردگاه تا سر تیغ کوه سفه بود، از ایران بروها گروه. چون از دور خاقان، چین بنگرید خروش سواران ایران شنید پسند آمدش گفت که اینک سفاه اینک یعنی در نفخه همومد هم اینت اشتباه است اینک یعنی اون چیزی که در تران بجمیان اینا هاش که دخورستان میگن اینه اینک سفاه سواران رزمابر و کینخا سپهدار پیران دگرگونه گفت هنرهای مردان نشاید نهو سپهدار کو چاه پوشد بخار یعنی روی با باخار بپوشونه که سیر دیده نشه و رو اسب تازد به روز شکار از آن به که خیره روز نبرد هنرهای دشمن کند زیر گرد. به پیران چنین گفت خاقان چین که اکنون چه سازیم این بردشته کین. و را گفت پیران که زندک نگیرند یادن درین. رزمگاه کشیدی چنین رنج و راه دراز سفر و دیدی نشیب و فراز به تا سر در این رزمگاه بباشیم و کرد گرده سپاه راه را کنم زن سفرس پردونیم سر آمد روزگاران بیم بتازن شب گیر تا نیم روز نبرد سواران گیتی فروز دگر نیمه روز بیگر گروه بخوشن تا شب برده زخوی سفایان ما بیشتر میتونن که گروه از اینا سرعت کنن آرام بگیرن و بعد باز با هنگام تازه نفس برن به جنگ شب تیره آسودگان را به جنگ برم تا شود شدن کارتنگ به ایران گذاریم از در سپاه یعنی بگذرانیم نه مانیم تخت و نتاج و نشاخ بدو گفت حاقان جز این رای نیست بگیتی گیتی تو لشگران رای نیست چه خرشید بر کنبد لاش ورد پر سراپردهی زد, زد زرد خروشی بلند آمد از دیدگاه به گودرز که پهلوان سپاه سپاه آمد و راه مزدی شد زگرد سپه روز تاریک شد به جنبید گودرز از جای خیش بیاورد پوینده بالای خیش یعنی عصب پویان خودش پوینده را آورد سوی گرد تاریک بینهاد روی همیشد خلید دل و راهجوی بیامد چون از نزدیک ایشان رسید درفش فریبرز کاووس دید پیاده شد از اسب درز پیر همان لشکر افروز دانشپذیر یعنی گودرز یعنی فریبرز هم پیاده شد گرفتن مر یکدیگر را کنار ببارید گودرز خون بر کنار فریبرز گفت ای سهپهدار پیر همیشه به جنگندری ز کین سیاوش تو داری زیان درای آن سواران گودرزیان، از ایشان ترا مزد به سیار باد، سر بخت دشمن نگونسار باد، سپاس از خداوند خورشید و ماه که دیدم ترا زنده بر جای به تو گفت بنگر که از بخت بد همی بر سرم هر زمان بد رسد، در این جنگ پور و نبیره نماند، سپاه و درفش و تبیره نماند، فراموش شدم کار آن کارزار، این فراموش کردم، کنون است رزم و کنون است کار، سپاه از چندان بر این دشت و راه، که روی زمین گشته چون پر رزاه، کنون تا نگویی که رستم کجاست، ها نگردد مرا پشت راست، فری گفت است، پس من زجای، بیامد نبودش جز از را رای، به دو گفت رستم گوده از رستم چه گفت که گفتار رو او را نشاید نهفت، تری برز گفته ی جهان دیده مرد تن تن نفرمود ما را نبرد، بیا بباید بدان رازگاه آرمید یکی تا درست که من آید پدید. تا اینجا رسیدیم این بخش هم شنیدید و میخوام اگر اجازه میفرمایید دوستات جنیدی ما تا همینجا داستان رو نگه داریم چون پیامک های زیادی ماده و تلفون هایی که پاسخ بفرمایید من پیامک ها رو شروع میکنم چون پیامک ها خیلی هست آها یه پیامک اومده اینجا که گفته که سلام بر استاد عزیز جنیدی من حسین عبداللهی اهل روستای بقی هستم آن شخصی که فرمودید از بالای کوه صدای ماشین را شنیده است پدر من بوده است از برنامه خوب شما بسکرد. آقای هدایتی گفتار راست و سخن راست مثل تیر از کمان میره ببینید من این رو از روستای بقی شنیده بودم روستای بسیار آوادی بر فراز کوه امیدوارم که این نواده هم هنوز در بقی زندگی بکنه نیمده باشه به شهر اون روستای آباد رو روستاییان خالی نکنن برنو بقی قرونه بار بار که از زیباترین ترین رستور... روستاهای جهانی که از روستاهای نیشابور که اکنون شهر شده امیدوارم که این که این روستا رو نام شهر نام شهر دادن موجب نشه که دوستاییان دیگه کار نکنن و بخوان مثل اداریا پشت میز بشینن از این پیامک زیباتر پیامی نرسید. چون من این جریان اون کسی که از بقی شنیده بود سال 1130 چهار فکر میکنم شنیدم چند سال پیش میشه میشه ام... پنجاب و پنج سال, سال, پیش. سال پیش من نشنیدم من رفت به بوجنو دیدن یک که... کسی که مکتب داشت به نام ملاحوسین علی روانش شاد حتما نیست و اونجا شنیدم که از بقیه یک نفر گفته من از بالای کو صدای ماشین رو شنیدم ببینید من بهترین هدیه رو به من داد این شخص نامش اسمشون عبداللهی؟ عبداللهی بله. شاد باشید اه پرسیدن که آن استاد دلکی به باد وا میگویند و در لوری لورستان بای همون وای هست که به صورت بای و وا اومده و هنوز هم در بعضی زبانهای دیگه در خورستان هم بای میگن باد رو میگن بای مثلا اگه چیزی رو به باد داده باشه میگن و داد. یعنی به باد داد اولین تلفن رو بشنویم دوستان از زان پاک با درود بر هدایتی عزیز و درود بر استاد فرزان فریدون جنیدی. من اولین سالم از استاد این بود در مورد کعبه زرتوش میخواستم استاد توضیحاتی بدادن در مورد تاریخش در مورد معنویتش. و دومین سوالم در مورد کلمه قابوسه که ما یه قابوسه بنویش می‌گیم داریم و ظاهرا یکی از فراعن مصر هم قابوس نام بوده. خاصاً در مورد این و کلمه تورج آیا از تور گرفته شده یا چیز دیگر است؟ با سپاس از شما، با شکی از این آقای باشوکیب شنانده همواره گفتار ما درباره یه تورج یک نام است که بعد از تور گرفته شده و قابوس هم که یک نام است قابوس شما میدیند که قابوس با در زمان قابوس بود که نبرد ها همواران رختاد و خب مستیان هم که نژاد نخستینشون به هنگام کوریز از سرمایه ورن چهارون به زفتن به طرف مصر همواره با ایران پیوسته بودن و خب وقتی که این پیوستگی رو بریدن اون وقت میبینیم که کابوس در زمان کاسیان میرن و با هم اونجا نبرد میشه دو مرتبه سر به راه میارن بنابراین در مصر بسیاری از این نامه مثلا فرض کنیم که سعینه در عویستا که نماد پزشکی هست در تاریخ مصر ت البته یک شخص خیال پردازی مثل حالا روانش شد انزبی اولا منسوری یک 500 صفحه کتاب درباره این واژه نوشت و که هم رو که همهرا به هم بافت که چنین نیست این سینوه خودش نشانه اینکه که گرفته از صحنه ابستاییس و از این نام ها بسیار باید بوده باشه. بخش نخست گفتارشون رو من از بس با سرعت بود فراموش کردم میبم من. بعد پیامکی که داریم روسیه به زبان روسیه به زبان کرمانجی یعنی طرف سایه زبان کرمانجی یکی از زبانهای های کردی خیلی ریشهدار خوبه که البته اینها حرکت کردن از طرف کردستان شمالی اومدن به خراسان و بعد گروهی از اینها که از امور روها بودن یعنی ها بودن گروهی از انبارلویا برگشتن به گیلان و زبان بسیار رژیدار داره خیلی خیلی خوبیه و امیدوارم که همه من هفته پیش در از دماوند می‌گذشتم یک کسی رو دیدم که در کار اقتصادی بود و با فرزند خودشی به زبان خیلی عمیق کردی خیلی خوب صحبت می‌کرد و بهش آفرین گفتم که با اینکه شما تقریباً ست سال دیمیست سال ماجرات کردین دومدین دماغاً ولی با فرزندان خودتون کردی سخن میکید. همینطور باید باشه. افتخار به صحبت کردن به لهجه تهرانی نیست. افتخار به اونه که ما یادگار چند هزار ساله نیاکان خودمون رو بر زبان فرزندان خودمون جاری کنیم. درود و سپاس از برنامه خوب از جناب استاد جندی پرسش داشتم در خصوص زرتشت آیا یک نفر زرتشت بوده یا زرتشت های مختلفی در تاریخ داشتیم همچنین تو بخشی از شهنامه گویا حوالی داستان نوزر باشه که میگه بیاید موبدی در برخ از مسق نوشته شده بیاید موسای کدم یکهین دوتا درسته با سپاس حمید پارسی از تهران درود بر شما زرتوش یک نفره و اروپاییان که داستانهایی در همه زمینه ها سرودند و خواستند که آشفت کنند با حتی بازار فرهنگ ایران رو از چندین زرتوشی نام میبرند پیداست که اون زرتوشی که ناماوره اون زرتوشی که گات ها سروده و این گات بسیار درخشان یک دوم یکی در حقیقت خورشید تابان فرهنگ ایرانه از زرتوشی سپیتمانه که یک نفرم بیشتر نبوده بله، پیامک دیگه، لطفاً چند تا از این پیامک که سنین مختلف رو گفتن یکی برای کودکان، برای نوجوانان و جوانان کتاب مناسب و قابل فهم در مورد شاهنامه برای کودکان، نوجوانان و جوانان معرفی فهم بیاری آن کتاب ها روستان پهلوان که 11 جلت هست من تو، تو دو چپ از اون رو در اختیار فرزندان ایران نهادم به زودی چپ سوم میرسه و این ویرش هایی که در شاهنامه تو این سیسال کردم رو در حقیقت در نظر گرفته میشه. گمان دارم برای دو روز این کتاب بیاد. من کتاب خود. خودم رو میتونم بگم. البته کتاب کتابه دیگه تصویر با تصویر های عجیب غریب از رستم و اینها هست تو بازار. من نمیتونم اونها رو تبلیغ کنم. اگر شما میبینید که باعث شاهنامه رو اونچنان که هست به فرزندانمون یاد بدیم، ساب کنید تا داستان رستم پهلوانه. بنیاد نیشابور به دست تون پرسیم شما های بنیاد نیشابور 82 96 27 84 من بار دیگه میگم 82 96 27 84 میتونید تماس بگیرید و بپرسید چوالاتی اگر دارید مطلبی اگر دارید میتونید بپرسید یه چیدی در حود فکر بکنم در حود 9 تا 10 تا تلفن از شما ماند زمان برنامه تمام شد بسیاری از پیامک های شما ماند ببخشید سپاس گذارم از شما استاد. شاد باشید بدرود شب و روزتان خوش پدرام زیبید ای کسانی که تلفن کردید و پیامک فرستادید و پاسخ نشینیدید این پاسخ من به شما تهیه کننده برنامه آقای محمد رزاهاش هیدری صدا برداران آقای علی تاهری و آقای روح الله هیدری در ثباتات آقایان حمید فروزنده و مرتزا حسینی هماهنگی پخش، ابوالقاسم مظاهری و محدی مهدی ابراهیمی هماهنگی برنامه آقای سخرا به ستایشمنش عزیز و موجی و سردبیر برنامه من حمید رضا هدایتی این بنده حقیر انشالله موفق باشید خدا عمرتون بده ممنون از شما مردمان ایران شب خوش